دوست دارم برای مادرم یک هدیه جالب بگیرم. چه میخواهی بگیری؟ مادرت به چه چیزی علاقه منده است؟ مادرم آشپز خوبی است. شاید زعفران هدیه جالبی باشد. بله بسیار خوب است. زعفران ایران بهترین زعفران دنیاست. بله خوب است مردم کشور ما زعفران زیاد مصرف نمی کنند چون خیلی گران است خب پس بهترین هدیه زعفران خراسان است خراسان کجاست در شرق ایران کشاورزان خراسانی زعفران هم می کارند. زعفران را از گل زعفران به دست میآورند. درست است؟ بله، آنها زعفران می کارند و وسط هر گل سه زعفران وجود دارد. پس تولید زعفران خیلی سخت نیست. نه نه، گفتنش آسان است. اما تولیدش کار بسیار سختی است. بله درست میگویی کشاورزی کار سختی است اما زعفران هدیه خوبی برای مادرم است